مثل روز قبل کار نخواسته زدم تو بندر فرار گروب تو بوز مثل بچه گیام وقتی نگاه میرسید به آخر قطار کشتی ها اومدن و رفتن ولی کشتی من نمیندازه لنگر تو کدو مقیان پنهونه میونه کدو آبها زندونه دوباره رفتم دوباره رو انداختم زیرانداز انداز پاره رو بولندیه بوغه آخرین کشتی بیدار که تو آسمون اولین ستاره رو که روشن شد آسمون لاغر یکم معنی داد این انتظار یاورو ریشه اعتصاب آب کرده بود شاید که فراموش کرده بود انتظار ساغر رو تو نیستی آبم جلیه تموم آفتابم جلیه بیدارین روزا خواب تلخیه نیستی تموم خوابم کودکی یه نابم گلیه دستای ثابیده به تابم گلی نفسم و راحت میدوزدن اما نیستی صدای ها پاپم گلیه اویانوسم مرد کشتی کجای من درم بازار فروش کلک شد روخ نشون بده دلانتی چوبت ترکه شک شد, شد, شد باورم فلک شد اگه نیا شب دریام با اینکه سرده میگرز دستام اویانوسم مرد کشتی کجای آنر منم پامه زنگیر این ساهم روبرون آبه پرسرم خاکه گیرم وسط ترسمینه اینه که میمیرم وسط وقتی میای دل من دل شهر دل بندر میگیرم واسد عمری از گیرم لعنت به دریا کشتی ندارم لعنت به سرما روزا شلوغه اما بی شاید که خود کشتی هم دروغه من تو باید یاد بگیریم شنا هرچند که این جای کوچیک بزرگه بیا کشتی هم باشی مابر بیا با هم بشیم مسافر دستای من حاضرین پارو بشین چشم من میشینا خدای من آهای سینه سکان من میشی راه زیادی مونده تا خدای من اگه نیای امشب وسط دریام تموم راه و میرم با دستان بیا کشتی هم باشی مابر بیا با هم بشین مسافر اقیانوسم مرد کشتی کجای بندرم بازار فروش کلک شد روخ نشون بده درنتی چوبت ترکه شد, شد, شد باورم فلک شد اگه نیایم شب وسط دریام با اینکه که سرده میدرز دستان اقیانوسم مرد کشتی کجای